نهادها چیستند؟ محیط نهادی چه میکند؟ رهیافت نونهادگرایی بر اساس این سنت نظری توسعه یافت. دیسی نورس که بعضی از آثار وی به فارسی ترجمه شده است، کار خود را از دانشگاه واشنگتن آغاز کرد و در سال 1993 برنده جایزه نوبل شد. بر اساس رهیافت نونهادگرایی این نهادها و تعامل میان آنها جامعه و فرهنگ را شکل می دهد. منظور از نهادها در نونهادگرایی فراتر از سنت صرفا اقتصاد نگر است و تکید می کند که خود مناسبات تولید نیز در شبکه در هم تنیده ای با سایر نهادها عمل می کند. نهادها ساخت متشکل از شکت یا شرایط پایدار شیوه های عمل هستند که از طریق آنها همکنشی های مهم و پردامن مبتنی بر یک رشته ارزشها و هنجارها و نمادهای مشترک هول منافع و علایق صورت میگیرد. مانند نهاد خانواده، مالکیت، دولت، دین و تعلیم و تربیت. هر نهاد خود از زیر هایی تشکیل می شود. مثلاً هول نهاد خانواده زیر ای از ازدواج، خانه، مهارم، وراست و خیشاوندی به وجود می آید. همینطور هول نهاد مالکیت زیر مجموعه از جریان ثروت و اتحادی های کارگری و غیره. هول نهاد دین نوع ارتباط با امر قدسی و سازمانها و سلسله مراتب های ناشی از آن. حول نهاد دولت، نوع گردش قدرت، شیوه های حکومت و قوانین. حول نهاد تعلیم و تربیت، نوع الگوی آموزشی اقتدارگرایانه یا آزادی شکل می گیرد. به بیان دیگر، نهادها شیوه های فکر، احساس و عمل نسبتاً پایدار، تبلور یافته و ساختمند هستند که جامعه را تشکیل می دهند و وجوه الزاماوری را برای افراد ایجاد می کنند. گرویچ از شیوار تلقی کردن نهاد انتقاد کرده است. نهادها در واقع باستابی از حوضه نمادین هستند و از نظام های هنجاری و ارزشی شکل میگیرند و تابعی از تحولات آنها هستند. وقتی بخواهیم اخلاق اجتماعی را در ایران با بهرهگیری از رهیافت گرایی بررسی کنیم، لازم است به کم و کیف نهادها و زیر های نهادی توجه کنیم. در اینجا چند مثال می‌آوریم. یک باید ببینیم شیوه های تأمین معاش، مناسبات تولید و نحوه مبادلات چگونه است. مثلاً ایلیاتیست یا گلهداری و حشمداری یا سهمبری دهقانی یا بازرگانی صنعتی و یا اقتصاد دانش است. وقتی زندگی مردم با اقتصاد دانش بگذرد، یک طور فکر و رفتار می‌کنند و فرهنگ و جامعهشان به همان نحو شکل می‌گیرد. و هنگامی که زندگیشان با اقتصاد صنعتی می یا با اقتصاد بازرگانی و به طریق اولا اقتصاد دهقانی و ایلیاتی یک دور دیگر دو روابط کار چگونه است؟ آیا ساده است؟ همه کارها را همه می توانند انجام دهند یا پیچیده است و تقسیم کار صورت می گیرد و امور تخصصی می شود و تمایز و افتراق یافتگی و غیره پدید می آید. سه، آیا مالکیت فردی نیرومندی وجود دارد یا مالکیت جمعی و مشاع غالب است؟ چهار، امنیت وجود دارد یا ندارد؟ کم است یا زیاد؟ پنج، ساخت قدرت و دست به دست شدن آن چگونه است؟ در جایی قدرت اگر بخواهد اصلاح شود، باید براندازی شود و همه چیز به هم بخورد، و در جای دیگر قدرت با هزینه های محدودی جابجا جا می شود. شش. الگووی زیست کوچنشنی نیست یا روستانشینی، شهرنشینی است یا جهانی؟ هفت ارتباطات: راهها و جابجاییها ها چگونه است؟ 8. زیستگاه، آب و هوا و منابع از چه قرار است ؟ نه. وضع جنگ و صلح چگونه است آیا جامعه اغلب درگیر جنگ است تحرکات میان افراد و گروهها عمدتا به شکل قارتی است یا رقابتی واگرایی وجود دارد یا همگرایی ده ثروت سلامت زندگی بیماری و مرگ و میر چگونه است یازده تعلیم و تربیت چگونه نهادمند شده است تعلیم و تربیت ایدالیستی افلاطون را در نظر بگیرید و آن را با تعلیم و تربیت ارسطویی مقایسه کنید. افلاطون سختگیر و نخبهگرا است، ولی ارستو عرف عام را در نظر می‌گیرد و اعتدالگرا است. الگوی تعلیم و تربیت ناتورالیستی با الگوی تعلیم و تربیت رمانتیستی متفاوت است. برای مثال، تعلیم و تربیت پراگماتیستی نوعی نهاد آموزشی ویژه را در ایالات متحده شکل داده است. دوازده، حجم شرعی دین چقدر است؟ اساسا دین در مقایسه با جنبه معنایی تا چه اندازه جنبه نهادی دارد؟ دین به چه میزان یک حقیقت متعین یا نامتعین است؟ مثلا در نظر بگیرید، در جامعی دین به جای اینکه به اصطلاح شرع باشد و وجه شرعی داشته باشد، بیشتر یک حقیقت و ایده است. در این جامعه دین نامتعین تر از است که موضوعیت شرعی دارد و بسیار متعین است و سایر معانی و ارزش‌های موجود از طریق آن تعریف می شود. آنچه در دوازده مورد گفته شد در همکنشی با هم چیزی را به وجود می‌آورد که از آن به محیط نهادی تعبیر می کنند و در رهیافت نونهادگرایی همه چیز حول این محیط توضیح داده می شود. محیط نهادی بر تعریف مشروعیت تاثیر میگذارد. نفوی فراگیر بر رفتار مردم دارد و سرچشمه باورها و ارزش‌های جمعی است. یک مثال کاربردی این است که وقتی نهاد خانواده و سیاست کمالگرایی پدر سالارانه است نوعی مشروعیت برای خشونت به وجود میآید. پدری که فرزندش را برای تربیت تنبیه می کند ذاتا آدم بدی نیست. بلکه از نظر او خشونت برای تربیت و کمال بشر لازم است. گاه حتی روایاتی نیز بیان می کنند و می گویند را از دیوار اتاق بیاویزید مستحب است که شلاق آنجا بماند و فرزندان ببینند. در واقع نهاد پدر این شکل از مشروعیت را برای کنترل رفتار دیگران به همراه دارد. در سطح سیاسی همچنین است. آنهایی که در نظام پدرسالاری سیاسی خشونت دولتی را اعمال می کنند چه بسا برای این کار خود توجیه دارند و آن سوق دادن جامعه بشری به سوی کمال و فلاح است. اینطور نیست که همه بیماری روانی داشته باشند بلکه در یک محیط نهادی واقعا برای خشونت مشروعیت به وجود می آید. این خشونت مشروع ممکن است زمانی از نوع خشم پرولتاریایی و زمانی هم از نوع خشم مقدس باشد. به هر صورت پدر سالاری خانوادگی و سیاسی در واقع نوعی محیط نهادی است که به خشونت مشروعیت میبخشد و همینها خلق و خو و اخلاق مردم را توجیه می کند. قواعد رسمی مانند قوانین و غیر رسمی مانند هنجارها، رویه ها و خلقیات تحت تأثیر همین محیط نهادی شکل می گیرد. یک مثال کاربردی دیگر، تقلب در امتحان را در نظر بیاورید. دانشجویان و دانش آموزانی که ذاتن شرور نیستند و در خانواده های محترمی هم زندگی می کنند، به محض اینکه نگاه معلم و استاد بر برمیگردد، وسوسه تقلب دارند و مرتکب آن می شوند. دوستانشان هم این را میبینند و ناراحت نمیشوند. از نظر آنها تقلب قباحت ندارد. گویا نوعی زرنگی و یک هنجار است. این هنجار از کجا آمده؟ میتوان گفت در نهادهای ما آنقدر کنترل از بیرون وجود دارد که نوعی تصویر ذهنی خاص برای مردم از خودشان تثبیت شده و آن تصویر موجود است که ذاتاً میل به خلاف دارد و باید از بیرون کنترل شود. بنابراین، وقتی کنترل بیرونی برداشته می شود، تقلب آغاز می شود. وقتی سیستم همواره میخواهد از بیرون کنترل کند، در واقع به همه الغا می کند که متقلب هستند. نوعی روانشناسی پسر بد رواج می آبد. نهاد خانواده و بزرگترها با کنترل‌های بیرونی نهادمند شده به فرزندان و نسلها الغا می کند. وقتی به خود رها شوید میل به خلاف دارید و اساساً باید از بیرون کنترل شوید. نتیجه این می شود که وقتی به هر سببی مکانیسم های بیرونی ناکارآمد میشود، مردم چندان سازوکارهای های خود کنترولی، خود تنظیمی، خود جهدهی و خود راه بردی ندارند و در برابر وسوسه ها زود از پادر می آیند. فرزند، از محیط نهادی غالب، تصویر ذهنی منفی از خود دریافت می کند. وقتی نهاد به او الغا کرده که متقلب است، او هم تقلب می کند. تصویر ذهنی که نهاد با الگوهای کنترل بیرونی به او داده، تصویر آدم متقلب است. چارچوب های انتخاب اقلانی و ترجیحات عاملان اجتماعی تحت تأثیر محیط نهادی است. مردم انتخاب اقلانی خود را در چارچوبی صورت بندی می کنند که متأثر از وضع نهادهاست. محیط نهادی اقل و اقلانیت را تعریف می کند. در یک نوع محیط نهادی اقلانیت حکم می کند افراد منافع خصوصی خود را از طریق خیر عمومی دنبال کنند. آدام اسپید می گوید قصابی که هر روز صبح سر وقت به دکان می و می کشد به مردم گوشت خوب بدهد عاقل است. چون میفهمد برای تحقق منافع شخصی خود باید هوای مشتریانش را داشته باشد. این نوعی اقلانیت است که از محیط نهادی داد و ستت منظم آزاد و رقابتی نشعت می گیرد. اما در یک نوع محیط نهادی دیگر که بی نظم و ناپایدار است، عقل میگوید فعلا کالای خود را به هر کیفیتی است به مشتری بفروش و نفع امروزت را ببر. فردارا چه دیده؟ اگر این مشتری نیامد، دیگری میآید. در یک محیط عقل میگوید اگر من، او و تو قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنیم، همه ما و فرزندانمان دچار دردسر میشویم. اما در محیط نهادی دیگر عقل یعنی زرنگی و زرنگی یعنی تا میتوانی ویراج بده و از چراغ قرمز عبور کن. پس عقل مردمان در مقیاس کلان نیروی آزاد از تاثیر نهادها نیست. محیط نهادی نفوذی از نوع شناختی نیز دارد و سرمنشأ سازه‌ها و برساخته‌های اجتماعی است. باورها و الگوهای رفتار و قضاوت متأثر از محیط نهادی است. یک مثال کاربردی از این دست است. چرا در یک محیط نهادی رودربایستی شکل می گیرد؟ به چندین علت نهادی و از جمله این که ساخت استبدادی به قدری حیثیت مردم را آسیب پذیر کرده که آبروداری هرچند به هزار تکلف برایشان حیاتی شده است. تعارف‌های های دمداری نمونه از این دست است همان مردمی که اگر چراغ راهنما بزنید تا اطلاع دهید میخواهید بپیچید فوری ویراژ می دهند و نمیگذارند مگر اینکه حتما قافلگیرشان کنید دم در می و به شما تعارف می کنند شما بفرمایید. این پارادوکس ها متأثر از محیط نهادی است چرا سخنچینی و بدگویی است؟ این امر نیز علت نهادی دارد از جمله این که پراکندگی سرزمینی، ناامنی، ناپایداری و مانند آن فرصت زندگی اجتماعی قاعد مبتنی بر گفتگوهای شفاف و سریح، صمیمیت، نقادی و نقد پذیری را از مردم سلب کرده است منطق اقتضا یکی از مفاهیم کلیدی در نهادگرایی منطق منطق اقتضا این است که رفتار عاملان را محیط نهادی اقتضا کند. از یک جهت مولانا درست میگوید این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم اما به یک جهت میتوان گفت این که گویی این کنم یا آن کنم اقتضای نهادهاست ای سنم از آثار اقتضایی نهادها بر خلق و خو میتوان مثالهای کاربردی بیشتری آورد. اقتضای محیط نهادی بیاعتمادی چیزی جز پنهانکاری نیست. در جامعه ای که نمیتوانیم اعتماد کنیم، اغلب به پنهانکاری تمایل داریم. نه اینکه که صرفاً به لحاظ روانشناختی به دیگران اعتماد نکنیم. البته متغیرهای روانشناختی هم در جای خود مؤثر است. وقتی با یک الگو موضوع را توضیح می‌دهیم نمی‌خواهیم الگوهای دیگر را منتفی بدانیم. الگوهای متعددی وجود دارد، اما در الگوی بررسی با تحلیل نهادی اینکه اعتماد نمی‌کنیم، حالتی است که در یک بستر نهادی شکل گرفته است. وقتی این بیاعتمادی وجود دارد، اقتضایش همان است که در فرهنگ ما می‌گویند استر ذهبکه و زهابکه و مذهبکه. یعنی باید نه جایی را که میروی بگویی نه از تلاو و دارایی خود صحبت کنی و نه از علایق دینیت چیزی بگویی. برایت مشکل ساز می شود. جالب است که در همین فرهنگ اولین چیزی که از شما میپرسند این است که میگویند گویند کجا از این طرفا؟ یعنی بر اساس مرسومات ظاهری همه همان چیزی را از ما میپرسند پرسند که به اقتضای الگوهای پنهان زیست اجتماعی در این سرزمین گویا نباید به زبان بیاید. شاید معتقدان به ناخودآگاه اجتماعی به این نتیجه برسند که این همه آدت های سؤالی از قبیل از این طرفها حال حالوزا چطوره و چه خبر به دلیل کمبود نهادین شده ی این اطلاعات در زندگی و تعاملات اجتماعی مردم متداول شده است. منطق اختزا سرشار از محیط نهادی است. و نظام نمادین، الگوهای شناختی و شابلون های اخلاقی به شدت تحت تأثیر آن شکل می گیره. مثالی از اینکه که های اخلاقی در منطق اقتضا رشه دارد و متأثر از محیط نهادی است این است که یک محیط نهادی خاص اقتضا می کند. افراد زیاد دروغ بگویند، بیش از حد تملق کنند، چندان شفاف نباشند، دروغی در پیش بگیرند و در هر چهار مورد گاه هم مسلحت آمیز چنین کنند. فساد پذیر باشند و گرفتار انواع شابلون رفتاری شوند که مقتضیات نهادی آن را رواج می دهد. خلاصه آنکه که تجربه های زیسته مردم یک جامعه در خلع شکل نمی گیرد. تجربه های زیسته در یک فرایند تاریخی و محیط نهادی شکل می گیرد و ما بر اساس آنها عمل می کنیم. این تجربه ها تحت محیط نهادی سرچشمه الگوهای پنداری، کلامی و ارتباطی ما میشوند. به تعبیر مهتی بازرگان، برای بنشین چند لغت داریم که از آنها بر حسب مقتضیات استفاده میکنیم. این الگوهای کلامی، ارتباطی، رفتاری، عادات و آداب در تجربه‌های زیسته ماریشه دارند و تجربه‌های ما هم به نحوی از محیط نهادی و تاریخی نشأت میگیرند. بر مبنای این نظریه هر نوع تغییر پایدار در الگوهای رفتاری و خلق و خو و روحیات مستلزم تغییراتی در محیط نهادی است تا محیط نهادی تحول پیدا نکند و نهادهای ما تحول نیابد تغییر پایداری در خلق و خوی ایرانیان قابل تصور نیست